ده آدمی بر سفره بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند حریس با جهانی گرسنه است و قان به نانی سیر او کما گفتند توانگری به قناعت به از توانگری به بزاعت. روده تنگ به یک نان تهیب گردد. نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ، پدر چون دور عمرش منقضی گشت، مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت که شهوت آتش است از وی بپرهیز، به خودبر آتش دوزخ مکن تیز، در آن آتش نداری طاقت سوز به سب رابی بر این آتش زن امروز.